بخش ششم استفاده از ضبط صوت و کامپیوتر اساساً در جریان یادگیری مکالمه زبان زبان مادری یا خارجی و در تمرینات و تکرارهاست که دستگاه ضبط صوت مهمترین کاربرد خود را پیدا می‌کند همان گونه که جورج روویر متخصص مطالعه امکانات آموزش سمعی و بسری می می‌گوید حتی میتوان این دستگاه را در این آموزش‌ها ضروری دانست. والدین نیز می‌توانند تا حد امکان از آن استفاده کنند. این دستگاه به کودک امکان می‌دهد صدای خود را گوش داده و آن را بشناسد که در واقع معمولاً آن را نادیده گرفته و بهتر است خیلی زود وجود آن را به وی شناساند و در همان حال وی را از موفقیت‌هایش آگاه کرد. مسئله‌ای که باعث تشویق وی شده و همچنین اشتباهات او را به وی نشان می‌دهد و باعث می‌شود آنها را تصحیح کند. سوای مطالعه زبان‌های زنده و تمرینات تکرار که ضبط صوت بیش از هر چیز دیگر در آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد، این وسیله امکان می‌دهد که برنامه‌های موسیقی و برخی از صداها را از رادیو و یا تلویزیون ضبط کرده و همچنین برای ضبط صدای فرد جهت تشخیص نواقیس و های آن از این دستگاه سود ببرید. و سرانجام، والدین به سادگی تشخیص خواهند داد که غنای بیشتری در بیان گفتاری کودک نسبت به چیزهایی که می نویسد وجود دارد. با ضبط این گفتارها روی نوار ایشان خواهند توانست از آن بهرهبرداری برداری کنند. در رابطه با کامپیوتر که امروزه در برخی مدارس مورد استفاده قرار می‌گیرد و بعدها مسلما به صورت مداوم در مجموعه مؤسسات آموزشی به کار خواهد رفت، متذکر می‌شوم که از این دستگاه در محیط خانوادگی نیز می‌توان استفاده کرد. در این مورد می‌توان تذکراتی را که در دفترچه راهنمای آن وجود دارد، به کار برد. ولی این را نیز باید بگویم که اگر چه این دستگاه امتیازات قابل ملاحظه ای را در رابطه با تجارت به همراه داشته و در مورد تحقیقات کمک های زیادی می کند، در رابطه با مسئله آموزش این قضیه جای بحث زیادی دارد. بیشک این دستگاه میتواند به بیداری هوش کودک کمک کرده برای وی امکان یادگیری را ضمن بازی کردن به وجود آورده، و وی را از برخی جهات به منطق عادت دهد. همچنین می مسائل بیهوده ای را نیز به وی خورانده و خطای حسی و توهمی از سهولت و آسان بودن در وی ایجاد کند. علاوه بر این ممکن است توانایی او را برای یافتن پاسخهای مناسب برای مشکلات مشخص محدود کرده و قابلیتهای او را در رابطه با نگارش کاهش دهد. مثلا در آمریکا دانش آموزانی که بیش از حد کامپیوتری شده اند در نهایت دیگر قادر نیستند، به زبان مادری خود پاسخ سوالات را بنویسند. فرانسوا دال که کاملا بر ضرورت انفرماتیک در کارخانه ها آگاهی دارد، در این زمینه می یک فرهنگ واقعی فقط از طریق فراگیری کند مسائل مشکل به دست می آید و منظور یادگیری است و نه فقط به خاطر سپردن داده های یک کامپیوتر. کریستیان بولاک وزیر سابق آموزش و پرورش فرانسه اینطور گزارش می‌دهد نوشتن اولویت دارد و باید با این اشتباه که کامپیوتر به عنوان حلال مشکلات مسائل آموزشی شناخته شود مبارزه کرد بخش هفتم استفاده از تلقین تمرینات خود تلقینی که برای رشد حافظه و به طور کلی هر استعداد ذهنی دیگری در نظر گرفته بودیم در اینجا توسط چند جلسه تلقین جایگزین میشوند. برای این کار، شب پس از خوابیدن کودک و هنگامی که او عمیقاً به خواب رفت باید به وی نزدیک شده و در گوش او حدود ده بار تکرار کنید. حالا تو به سادگی درسایت را یاد میگیری. حالا تو زود، تند و خوب در را یاد میگیری. سوای آن: بر حسب شرایط مختلف میتوان از یک روش تلقینی کما بیش غیر مستقیم نیز استفاده کرد. در مرحله اول، هرگز نباید تلقینات منفی را به کودک ارائه کرد. مثلا، تو چیزهایی را که یاد میگیری به سختی حفظ میکنی، یا حافظه تو بد است. البته این جملات به طور کامل واقعیت ندارد، ولی گهگاه باید به او گفت حالا تو سری و خوب کار میکنی و به سادگی و کاملا درس‌هایت را یاد میگیری. قطعاً اگر او مستحق این تلقینات باشد، از گفتن آنها نباید دریغ کرد. در این راستا همچنین تذکر می دهم که دکتر لیبول، دکتر برنهایم، دکتر بویون، دکتر لادام، دکتر آگوست وازین، دکتر فورز، دکتر بوردون، دکتر فورل، دکتر وینر، دکتر کوروال و دکتر وتر استرند از تلقین در مورد آموزش اخلاقی کودکان جوان کما بیش به ذکار و آموزش ذهنی کودکانی که از نظر روانی عقب مانده هستند با موفقیت استفاده کرده در یک رشته افکار کمی متفاوت که حداقل دارای تأثیر تلقینی مشابه باشند، ضرورت دارد که کودک توافق والدین با مربیان را احساس کند. محکوم کردن معلم، روش ها و نمراتش به طور آشکار و بی ارزش شمردن مجازات های تحصیلی وی در برابر کودک که ممکن است در مورد وی اعمال شده باشد از اشتباهات سنگی است که باید مطلقاً از آنها دوری کرد. بخش هشتم مراقبت از تدایی های افکار خود به خود یا تلقینی تدایی های افکار که مکانیسم آنها را در فصل اول این کتاب مشخص کردم، نقشه درجه اولی را در زمینه شناخت حسی، هوشی به خاطر سپاری و نهایتاً شکلگیری ذهن افراد ایفا می‌کنند. بنابر بنابراین بایستی به دقت مراقب آنها در کودکان بود. در شناخت حسی آنها از درک دنیای بیرونی قابل جدا شدن نبوده و شکلگیری درک اکتسابی را رهبری می کنند. این تدایی ها شامل عناصر و تاروپود حافظه هستند که بدون آنها حافظه ناقص بوده و از خاطرات منزوی تشکیل شده است. همچنین در شناخت فکری که ذهن آن را مقایسه کرده، عمومیت داده، تشخیص داده، استدلال کرده و تصور می این اعمال متفاوت فاقد یک کامی محکم بوده و اگر تدایی های افکار شرایط آماده شدن و تعبیر آنها را به وجود نیاورد، آنها حتی در خلع نیز فعالیت می کنند. در این مورد و همچنین در رابطه با گردش های علمی متذکر می که اگر والدین مطالعه یک درس یا تمرین تحصیلی را رهبری می کنند، بایستی در چهارچوب موضوع باقی بمانند. ولی این مسئله باعث ممنوعیت مداوم خروج از این کادر نمی شود. این مسئله در واقع می از طریق تدایی های افکار حوش کودک را در اطراف موضوع روشن کرده و به وی دیدگاه گسترده تری از حقایق مورد آموزش بخشیده و در نهایت انگیزه را در وی بیدار کرده و باعث می شود که کسب اطلاعات تسهیل شده و حفظ خاطرات به راحتی انجام گیرد. سوای آن خروج از این چهارچوب می‌تواند برای کودک توقفی در مطالعه و وسیله‌ای برای استراحت باشد. از سوی دیگر، والدین می به کودک یا نوجوان که دارای ذهن آماده است، اجازه دهند که کتب ادبی، هنری یا علمی را که محتویات آنها خارج از برنامه کلاسیست نیز مطالعه کند. در عین حال، اینان فقط باید به صورت پنهانی مراقب بوده و تعادلی بین این فعالیت کار فکری و کار تحصیلی کودک به وجود بیاورند. در رابطه با شکلگیری شخصیت، میتوان گفت که بخش مهمی از راستی و صداقت یک ذهن بستگی به تدایی های افکار وی دارد. یک اندیشه درست در واقع آن فکری است که خود را بر حسب روابط واقعی تدایی می کند. ذهنی که مراقب تدایی های افکار خود نیست و بدون کنترل آنها را میپذیرد دچار سادلوهی، اشتباهات و پیشآوری های آمانه می شود. سوای آن، آرامش و اطمینان ما بستگی به تداییی در افکار و خصوصاً در مورد آنهایی که از اوان کودکی ایجاد شده اند دارد. کدام یک از ما دچار امواج ترس و وحشت غیرقابل مقاومت نشده و شدیداً از آن ناراحت نمیشویم. در عین اینکه میدانیم آنها بیهوده هستند. حتی آگاهترین انسان‌ها نیز غالباً تا نهایت پیری خود بار های افکاری را که در کودکیشان شکل گرفتند به دوش می‌کشند. این تداییها به مقدار زیادی در ایجاد خلقی غمگین یا شاد که از این طریق حتی روی شخصیت نیز تأثیر می‌گذارند، مؤثر هستند. می‌دانید کودکانی که تربیتی مناسب و خصوصاً اوغلایی دریافت می‌کنند، تقریباً نادرند. از آن گذشته آنهایی که از این تربیت برخوردار بوده اند نیز همواره در یک محیط روشن و اخلاقی مطلقا رضایت بخش قرار نداشته اند. زیرا بخشی از این آموزش از طریق اطرافیان، دوستان والدین و یا کارکنان منزل به وجود می آید. که ایشان در این رابطه دقت نکرده و بدون آنکه نظر سوئی داشته باشند، گاهی در مقابل کودکان، افکار، نظریات و فرمولهای را از خود ارائه می دهند که می توانند بسیار خطرناک، بیارزش و یا حداقل توصیه نشده باشند. هم های کودک نیز در این رابطه نقش مهمی را بر عهده دارند. همچنین بهتر است اثرات زیانبار برخی از مطالعات و فیلم را که در سینماها یا تلویزیون پخش می نیز متذکر شویم. هیلی روانشناس آمریکایی با تکیه بر آمارگیری گسترده‌ای که در جوانان به ذکار انجام شده نشان داده است که رمان‌ها و مجلات مصور که در آنها صحبت از راهزنی می‌شود، تأثیرات خطرناکی بر رشد شخصیتی جوانان دارند. بسیاری از جوانان که این نوع کتب و مجلات را در اختیار دارند، پس از مطالعه آنها همان کارهایی را مرتکب شدهاند که شبیه به جزئیات آن کتب بوده است. فیلم‌هایی که تأثیر خشونت و راهزنی را از خود بر جای می‌گذارند نیز همین اثر را دارند. اما برای گروهی دیگر، فقدان واقعیت است که تأثیر مزری بر جای می‌گذارد. مثلا موفقیت در زندگی برای ایشان به نحوه بسیار ساده ای توصیف شده است. دال در این مورد می نویسد برای جذاب کردن تاریخ و جلب توجه در فیلم‌ها، معمولا به ندرت افراد معمولی و خانواده‌های عادی را نشان می‌دهند. در این گونه فیلم ها نشان دادن افرادها و تفرید ها به عنوان اصل مطرح است. ثروتمندان در آن بیش از حد ثروتمند و فقرا بینهایت فقیر هستند. شانس و قدرت جسمانی، زیبایی و شجاعت تناسبی با جایگاهی که در واقعیت از آن برخوردار هستند ندارند. این مسئله برای بزرگسالان سالان که تجربیات زیادی در زندگی داشته و می توانند غیر واقعی بودن یک داستان را از واقعیت زندگی تشخیص دهند خطرناک نیست. ولی برای کودکانی که زندگی را با این رنگ می بینند، خصوصا اگر این برداشتهای غلط در خانه، مدرسه یا یک مؤسسه اجتماعی تصدیح نشوند، می تواند خطرناک باشد. بنابراین نتیجه میگیریم که والدین و مربیان بایستی کاملا مراقب تدایی های افکار خود به خود یا تلغینی در کودکان باشند. زیرا آنها می برای همیشه در حافظه وی باقی مانده و اگر ناخوشایند باشند، روزی نقش کمابیش مزر خود را ایفا کنند. در نتیجه ایشان باید تا حد امکان نظارت افرادی را که در اطراف کودکان حضور دارند کنترل کرده، و مسلما خود آنها را نیز به دقت تحت مراقبت داشته باشند همچنین به طوری که گفتم باید مطالعات کودکان و فیلمهایی را که در سینما یا تلویزیون می‌بینند کنترل کنند اگر کودکان در برابر اندیشه قرار گرفتند که بایستی حذف شود باید آن را توسط افکار جدید جایگزین نموده و این افکار را آنقدر تکرار کرد تا اشباه شده و در این رابطه از احساسات، حیجانات، واکنش و قوه تشخیص کودکان استفاده شود. این افکار جدید همواره باید با کار، تلاش، صداقت و راستی، افکار و احساسات رضایتمندانه و ارزشهای برتر تدائی شوند. از دیدگاه دیگر متذکر می شوم که به عنوان یک اصل کلی در کودکانی که تدائی افکار غالب است، دارای روحی متعادل خواهند بود و آنانی که ممنوعیت‌ها برایشان حاکم است، احتمالاً افرادی مستره، بی اراده و وسواسی خواهند شد. سوای آن کودکانی که در تدائی های افکار خود در جستجوی چرا و چگونه چیزها هستند و آنهایی که در وحله اول به نظر ذهنی سنگین دارند، غالبا در واقع دارای ذهنی منطقی، متفکر و مناسب برای رشد علمی هستند. برخی دیگر برعکس دارای ذوق و قریه هستند و رابطه نامشخص پیشبینی نشده و گاهی ناخوشایندی بین چیزها را مییابند ایشان دارای اصحان درخشنده و ساده‌ای هستند که احتمالاً به وسیله روشهای علمی جذب نخواهند شد. در حضور این شخصیتهای متفاوت، والدین باید سعی کنند، در های معمول و رایج، تدایی‌هایی را که غایب بوده و به نوعی کار مربیان را در کودک ایجاد می‌کنند، وارد نمایند. به هر حال خانواده‌ها نباید رشد و تقویت حافظه کودکان خود را، اگرچه در برخی از اماکن دانشگاهی این استعداد را تحت این عنوان که با هوش در تضاد دست مردود می شمارند، دست کم بگیرند. زیرا این کار یک اشتباه بزرگ و حتی احمقانه است. برکسون به طور غیر ارادی روی این تضاد از طریق متمایز ساختن حافظه معمول از حافظه خاطرات تاکید کرده است. او مورد دوم را تحسین و مورد اول را تحقیر می کرده است. زیرا چیزی جز نگهداری میکانیسم ها نیست. ولی این تشخیص و تمیز در برکسون بیشتر جنبه متافیزیکی داشته است تا عملی. همانگونه که قبلا هم تذکر دادم بدون آنکه به حوش و ذهن بدگمان باشیم، حافظه آن را تغذیه کرده و مواد ضروری را برای او تهیه می کند. یک فرد باهوش که دارای حافظه ای ضعیف یا تعلیم ندیده باشد، بهترین شانس را برای بکار بردن استعداد خود از دست خواهد داد. بی تردید ما به کتب نیازمند هستیم، ولی نمی توان همواره برای انجام کاری از گروه اعمال اساسی تصمیم گیری، خلق و غیره به کتاب مراجعه کرد. بدگویی از حافظه به معنای محدود کردن قدرت روحی است. هوشی نیرومند و قوی آن است که همواره حاضر باشد. حضور ذهن شامل استفاده سری نه تنها از چیزهایی که فهمیده ایم، بلکه چیزهایی است که یاد گرفته ایم. شخصا در زمانی به دنیا آمده‌ام که حافظه بر حسب نظر چند نفر از متخصصان جدید مورد توجه قرار گرفته. و به عنوان نیروی شوم شناخته نمیشد. آموزگاران آن دوران از معلمین روستاها تا اساتید دانشگاه ها، سعی در رشد حافظه در شاگردان خود داشته و این کار را با دقت و مهارت و حتی می‌خواهم بگویم با نوعی صداقت انجام می‌دادند و من از این کار ایشان بی نهایت قدردانی کرده و امیدوارم که چنان شرایطی مجددن در دنیای شلوغ و مختل شده ما نیز به وجود آید. این روش تدریس در وهله اول آن وارد کردن رسوباتی قابل استفاده در عمق ذهن بوده و به دنبال آن تمرینی مؤثر که در جریان کار تقویت می‌شد در عوض ستایش کردن از نوع آموزش به جهت آسان کردن کار آنگونه که امروزه اکثرا انجام می‌شود اشتباه بزرگی است زیرا یادگیری برای تلاش کردن که دقیقاً در رابطه با به خاطر سپردن است یکی از اهداف اساسی آموزش و پرورش است. مسلما ما امروزه از یک محصل جز مطالعه تاریخ و جغرافیا و یادگیری اسامی یک گروه از پادشاهان همراه با تاریخ وقایه حکومتشان و مرگ آنها و یا فهرست فرمانداری ها توقع دیگری نداریم. البته منظور این نیست که شناختن نام فلان پادشاه یا فرماندار بیهوده است زیرا اگر از تاریخ و جغرافیا توقع داشته باشیم هر چیزی را که باید حفظ شود حفظ کند، باید اطلاعات دقیق را کنار بگذاریم و در این صورت چیزی جز یک مشت محملات ناپایدار باقی نخواهد ماند. ولی اگر هم قرار است تعدادی از وقایه تاریخی و یا مسائل جغرافیایی در حافظه ما قرار گیرد، این وقایه باید در همان زمان که فرا گرفته می‌شود به خوبی فهمیده شود. به صورتی که ذهن نیز از جملات مبهم و به خاطر سپاری های مکانیکی دور شده و حافظه هوشمند در اختیارش قرار گیرد. متذکر می‌شویم که حافظه و هوش با استفاده از تکرار میتواند بر حسب شکل استفادهی که از آنها می‌کنیم رشد کرده و یا تضعیف شود. این اندیشه که هر یک از ما مغزی در اختیار دارد و از به تولد به عنوان یک داده قطعی محسوب می‌شود، مخالف واقعیت است. در واقع ما به نوعی دارای مغزی هستیم که به گفته آلبرت جاکوآ، استاد معسیسه مردم شناسی مغزی که ما به سادگی در اختیار داریم به طور ضعیفی توسط داده های ما مشروط شده است. البته سوای موارد بیماری کودکانی که دوچار نقص اصف شده اند. در اصل، این امر از عمل والدین، مربیان و همچنین خصوصاً بقایه متعددی که ما را وادار به واکنش ساختهاند ناشی می شود. نتیجه موقتی و دائما تغییرپذیر پذیر کل زندگی است. مثلا فلان درگیری عاطفی انقلاب درونی و یا ذوق موفقیت تأثیر خیلی بیشتری روی رشد ذهنی ما دارد تا فلان تشکیلات که فرزن بر اثر حضور یک ژن جن در ژنهای موروسی ما هستند. و سرانجام متذکر می شوم، تجربه نشان میدهد، تربیت و آموزش کودکان از سنین خیلی پایین به عبارت دیگر از سن دو تا سه سالگی نیز مفید است. این کار در ژاپن، شوروی و چند کشور دیگر انجام میگیرد. در واقع در یک ماده نرم و قابل شکل گیری می می‌توان عادات شدید را هک کرد. انسانی که از دوران جوانی خیش از استعدادهای ذهنی و خصوصاً حافظه خود استفاده نکرده است، به سختی می‌تواند این تأثیر را هنگامی که به سن بزرگسالی رسید جبران کند. چون این شخصی در برابر کار، آزمونها و وقایع پیش نشده مجهز نخواهد بود.